دی الله رو خادگینا میشناسن پس اونا هم فاقد معرفت نسبت به الله و لفظ جلاله نبوده ان و این خیلی بحثی یکی از بحثهای بسیار شیرین و دلپذیر قرآن است که همون آیه قرآن رو ثابت میکنه که فطرتن دالته فطره الناس علیها یعنی اصلا توحید و خداپرستی یک فطری است که هر انسانی وقتی میخواد سرشته و خلق بشه در اصل اون فطرت خداپرستی خلق میشه و ذاتا انسان خداپرسته و انسان نمیتونه هیچ وقت ذات خودش تو گول بزنی چون خودش در این صورت فریب داده و خود فریبی بزرگترین درده که پشیمانی داره که هیچ هیچوقت درد پشیمانیش برای انسان جبران نمیشه چون یه رخ نزدیک مرد که میشه آدم میفهمه که عجب چه بودهایی رو واسه خودش خدا قرار داده بود چه چیزهایی رو بین خودش و خدای خودش واسطه و خایل و حاجب قرار داده بود و چقدر عمرش رو در گمراهی و تحیلیر و خودپرینی سپری کرده بود و نمیدونم من بعد بیفرماید و قول این تعالی و آزال لله به هم و آزال شرکا الان. سوره انعام آیه 136 میگه خدا میفرماید که این عرب ها در زمان جاهلیت وقتی قربانی میکردن دونست میکردن میگفتن خازال الله این مقدار از این قربانی مال الله باشه محازال شرکا اینا این مقدار از این قربانی مال اون کسایی باشه که ما شریک خدا قرار داریم که یعنی نصیب بطهای ما باشه میگه پس خود قرآن وقتی این آیات رو نازم میکنه و عرب ها هم منکر این نشدن که ما چنین رویه را رو نداشتیم دلیل است بر اینکه لفظ الله حتی مشهور در میان عرب بوده است و عرب به این لفظ الله معرفت داشته است و قرآن هم به اتقاه همین که های عرب در نهایت عرفان و فساحت و بلاغت نازل شده است و این چنین عقوبات رو از هم تفکیک کرده است. خب حالا این ساعت چقدر است خب پس این یه مقدار دیگه هم از تفسیل امروز خوبش که بخونیم حالا قبل از اینکه ما بعدش رو بخونیم خوب است که بطاله به هفته قبل هم زمنا هفته قبل هم زمنا زمن زمین نمونده باشد ما به رو گفتیم دسم رو هم گفتیم فاطعت و کتاب رو هم گفتیم البته هنوز سین و میم رو نگفتیم ولی امروز به مناسبت تفسیر خود الله رو میخواییم ببینیم که چگونه می شود خودش رو به ما بشناسوند برای اینکه درست است این الله چش که غلبه پیدا کرده در استعمال به ذات خدا اما واقعا این لفظ میتونه ذات خدا رو به ما بشناسونه ما وقتی بگیم خورما خورما رو به ما میشناسه شما میفهمید من چی میخوام مقصود منو به شما میفهمونن کلمه خورما وقتی بگم باد یعنی هوایی که جریان داره حالا یا شدت داره یا ضعف داره این جرایات ولی به هر حال مقصود من رو این کلمه به شما میرسونه شما دقیقا دک میکنید اما این الله چی میگه رحمان میگه رحمان چی رحیم رو میگه رحیم چیه کریم میگه کریم چیه خلاق میگه خلاق چیه هنان رو میگه انان چیه بدود رو میگه پس باید یک چیزی باشد که او الله باشد و داشته باشد یعنی وجود اینی و ذهنی و خارجی داشته باشد سرف نظر از وجود لفظی که این وجود لفظی اسم باشد برای اون اسم حقیقی تا اون اسم حقیقی دلالت کند ما را ور ذات بذار به اصمان و این اسم لفظی دلالت کند ما را به اون اسم اصلی که دلالت میکند برزاد با همه و استفاده خب اینجا میدان یه این مقدار علمی میشه و وسیع میشه و ما میاییم علف الله رو بست میدیم